و در اصول مهده شده و کنشون همه سلام در مناصبت های مختلف شو خودشون چه از به زباه آریان به اطلابات آریان نسیاری هم در دیان آمن بینه ها شدن که در مکتبه به الله مجمعی هم حالا پسید در اصول محل خلاف علمای اصولی اهل سنت خلاف درم و به لحاظ مرتبه این آیات آمند شامل غاومین و محضومین هم میشه اون هم به خاطر اینکه علمه علیه و این آیات در مناسیلات های مختلف تمثل کرده. بلکه از خواب که کردن احمد تقریب فهمدن. مثلا در اون حدیث که حضرتان داریم که اهل کتاب راوی گفت را که وقتی چی اون آب رو که شبان گفتن نه که رسانای جواب بود اون یه طور است امام هم شاکی شدن علیه فرع را نه تنها پیدا شدن اضافه خود علی معلی سلام تمانصر کرده که احسان کردن علی معلی وصلت کرد آیا میشه این قائل شو اصل این کلمه میگه هر چه منفرد یعنی این که یک نیست یعنی جای صحبندی در, در روایت ما در جایی نه که امام فرموده باشند این آیه مذه مثلا آیه مؤمنین آیه صحابه آیه سنی که در اهل رسول الله و ملت مذهبی مذهبی ماجدی تناسب بحث ها و ما و غیره دینان و غیره ناس و به موارد اینکه ملحج بر امر ائمه هایی که به زیره است، مخاطب است. هست منزاده برای وجوب حج فریده بودن حج و همومه. حالا نظر به اصله وجود یا نظر اینه که وجوبش کتابه دستون من یعنی وجوب و به وجوب حجبه همونه حالا بعد این مجموعه غباری ها خوبی کاش که در لطان آیاتی که به سیره خطابه خاصه به حاضرین یا موجودین زمان رسولان نیست این نوشن این به اما اینکه این این من تر باشه خیلی ویده اصولا من بیشت که ادهی از و حتی زیدی ها رو خیلال میکردم بی خواستم بیارم میشه بث موقع دیگه آقا میتونم بردن خودشون یکی از عدمه که استطلاع کردن که این آیات شامل و غاربین میشه به همه رو اها که به آها و آیات فرمسلی کردن یعنی همون این که من میگم به احمد علیمه به همه رو بیگم آیات مبارده که در بسال علیمه این این هم سنی ها دارن. این این مطلب رو سنی ها دارن که فاها همیشه به این آیات فرمسل کردن پس این نشون میده که آیات شامل و غاربین ه این به عبارت این این مطلبی رو که من کردن پیش شنید می پیشه خوال هم از اختصاص رعی این که مثلا این, این مردم هست بلکه اون خود علموی هم دارد اصلا این رو قرار دادن یکی از دردله اونها بر این از که پا تمسیخی به زاره و نگفتن آیات در حتی موجودی نفرد مستند یا مخاطبی یا حاضرین در نظر دارد تعاویر که عبوده مکاشه بر از این که آیات رو آم برای حاضرین و حالین رو مهدی خود احسید سنن کسی که واقعا آیات خواست جواب دادن این نقطه که درسته و غلما و خوبها تمسیو کردن این مطلب درست ولیکن اقتمالا بخاطر همون نکته خارجی چون آیات اختصاص با حاضرین داره وکن اجماع خارمه که خارمی و مردونی مختلفیه که تمکه تمسخ رو قبول دارد پس ما برای این این محضر کریمه روی موسیان به کتاب کردن اینجای بخش نیست بسی این شاخته مرده نیست به که از ساله آقا از ساله های شروع میشه این میشه تا موضوع ساله های دیگیست که بزرگتر میگیست مثلا چه اگر آقا و خاصه احمد نموزی این فعالی اسلام که نام و نامونه مکتب روزیدن این فردن اصلا فرده حضور این قرن اول و قرن دوم تو سلوان. این کلیه خواه ها اصولا در این مرحله است. چرا؟ این ممار اون سوا این بلا زمانی از زمان منظر سجاد به برد سواه خدا سواه ما حالا این که به از اعبارت احل سنت هم این در می آن چه علم های اونا هم کار کردن اختصاص به اهل وقت نداره. این خلصی از زمان منظر سجاد که فیر شده شده اگر همین ایمان سنده سجاز هست باقی تمسل کردن فقه های اونا فرمیده ما تمسل کردن پس شاخصه مذهب نیم همه این ها همین کار کردن پس اصل این که تمسل شده درسته لیکن اختصاص به شیعه نداره در کل دنیای فقه این کار انجام ممتنده این کار این کار این کار این کار نه زاهر شام زاهر یعنی استدلالی که اگر آن خود سنی آوزه اینطوره طوره من ستاد این بحث تماشا که احل رو خود رو هم نکیه بودن باقی خواهر بودن او سنی کنندی رو نکیه بودن و اگر سنی آوزه نراجه به احل وزه به کل خواهر راست همین نوتری گوه هم این دفعه اول است، نوتری گوه هم تاریخ هم. اگر این نقطه اول درست باشه که دارم درسته محضم میشه این مسئله اقتداعا اگر در فرم مدرخ شده تو اهدفه ها نبوده اینه نقطهی لدیفیه چون از خواهش مسئله نمیشه من رمز کردن ببینیم از سالای 67 سال که فرش شده تا دیوی سکرده مثلا در فرم کنم آزدنی ما بروجود با روح تالا اصلا هم بینید که حقیقه مثلا سیغه فرد بر زیادش برای یا جامعه بیدید سه با رو بعد ها صده صده این بس رو جدا کردن شد اصول آیا سیغه فرد دارد می کنه این در حقیقت اصول تجرید مقامی اجتماع بود. و بود وقتون این مار هر مطلعی که در هر که در فیر نداره مورد به خاصه بزاره این از فرم دو خوب. از از در اشتران اصول ماغه نفعه اسلام شروع شد این که ماغمه در کتاب ترسیس و شیعه کلام به برونه اسلام اصولی ماله حواله به ممارس اصولی و آنها نزیز بنایه توی فقه بود اما یه که بشه به صورت مدعبن در بیاده و بعد چه بشه این مرحله این مرحله مترکه این مرحله از این مرحله خب فقیه قبل اول میکنسه سیگه از این مرحله داره بجور میکنه, میکنه. این مرحله این اما وقتی ما میگیم اصول مرحله نوشتان که اصلا خاص در این جهت منتردن نوشته شده و آثاری از وجودش هست و تفسیر و تفسیرات از این رو یا قرار میدونیم این با منصفانه باید بکنیم اگه این باشه ما در همون قرنهای عواطب قرن دو برم 177 تا سدرشتا که به از ها در کتاب نصد رسایه شاکری دیگه کتاب رسیمی در اصول حافظاً ساعت ساعت. که زال هم فکر میکنم آلا اگه خواهدان قرار خواهدانش اگر اول سال دویستان، دون سال نزار به نظر سال تحریف کتاب هم بوزار باشه سال نزار سال همین هم که نیست که این کتاب اصول شیبانی شاگرد محروف عبا حنیکی بیا دکتایی برداری من نمی خواهدان فکرم تدوین اصول رو خدم شیفیت تدوین و اصول هم با کنگ کن موارث بود از این موارد فقی اون موارد که دیر بنایه درمو و سریان در حوال فرمی زده این رو جدا کردن این شده توش اصول اصول فقی قیم را هست مثلا مثال هم جد مثل موجیه مثلا زالبه سیره از موجیه مثلا فسن سموت محکوم هست اصلا این مباحث ظهوراتی به احتمال بسیار ولی اصلا از اهل صحابه شروع شده نه اهل کوباها مثلا روایت بود که زیر شجره میثمره اصلا انسان مثلا غذا هاجت نکرن مثلا زیر شجره میثمره فقط خب در این بحث معرفت مادر شجره میثمره یعنی چی یعنی درختی که الان میوه‌دار یا الان که پاییزه میباشه دیگه این بحث مشتبه در اونجا و آیا مراد از اسمار موجود سمنه یا مراد قابلیت سمنه مثلا که درخت بید بود اشکال نداره درخت زردالو و زمستون هم بود خوش که بود اشکال داره مسمه یعنی منشه نهر اسمار این منسه اما از اهل سحابه میبینیم این مقابل از پرد فوقها یعنی طبیعتن این وقت مشتن یا مثلا مار است ما از بیشترین وصابش هم این <ماردشت> چیه؟ قرار که حالا مثلا مادر شده مصوره چیه؟ قرارتن این که عده از ارخواس قصود ما که تبدیل شد با عنوان فقر از اهل صحابه هم مقرهه این بخواه از اهل فقا آه. این خوب بگرد کنیم وقتی که علماء اهل صنع برای این فقاها به اطلاعات کتاب تمسک می معلوم میشه در در اهل فقر یعنی در این سال 60 تا 126 در این مدت 180 سال فواها نگفتند این مساله تکمی برای اینکه خطاب مشابه یامان موجودین و حاضرین اند ها یامان معذورین من ها یعنی تکاثی صحبت شنو معلم میشه در اهل فقها این مساله مطلوب عناوا بوده که خطاها شامل میشه این مثل بحث مشتب و بحث مثل تیغه و ظهور تیغه مثلا در وجوب تنیلید و تشبیری مثلا این بحث ها نبوده سبوت محبوم و آیا این مفهوم داره یا محبوم نداره از قدیل این بحث ها نبوده این خاملن واضحه این اعواله چون اگه این از این قبلی باشه ایمارد اینجوری باشید مثلا قال ارمانی که در اینجا اینطور چرا لنه مثل قابل مشافره لاله و وقال الشافعي لا لا حكم اینطور لعنه قابل مشافه همون ما اگر تو استدلالات فردی این مطلب می اومد به راه رنج کارو خدمت اگر تو استدلالات فکری شو این مطلب می اومد معلوم بود این مساله از چه انتظا کردن جرشن از این که خود اصولی نهج نهرس سنت رو همه قوای تعرض کرد به خطابون معلوم میشه بر این مسئله چیزی بار نکردن یعنی در فقه دوران خوبها تا چارتر بازن بیس و اصلا توی این مسئله اختلافی مطرح نشده اولین چیزی که الان ما در آراء حد سلت اون اونی بینیم اختلاف نصفتن هنابل هستن و احمل نهنبل هم خوده ذهر کردن یا نه اسم احمل نهنبل هست یعنی اسم هنابله اگر اسم هنگله باشه این ها بعد از قرن با من. خود احماده نه هم ولی آفرین این معنی دیست این معلوم در خود این نقطه فهمی روشنه همچنان که در ما هم این محضت نیامده اشاره روشنه شده توی یه نه تنها هم یعنی در اون دوران فهم نه آمدن یک این که خودی رو بر این ابتناب بکنن مبتنی بکنن یک فقر رو بر اون ابتناب بکنن مثلا ابو آمانی فقر یا شافعی در کتاب علاقه مشکلی مثلا در همین کتاب اون شافعی مثلا لا یه یعنی یا یه یعنی اومد محضومی این رو ما ندیدیم یعنی خود احمد سلطن این طور لذا این احتمال هست خود دقیقه در فقه اصول بعد از قرن سرون مطرح شده من دیدم تازهیمون از این کامپیوتر ها حال مورده بشان اما خود من در کتاب فقه های فقه متحصیل رویسه مهمین ها موالد دیدم که وهاده یکسنی علاقان در خطاب یا اومد غالبین اما الان شده نمودانه که با کامپیس ها موجه کنند در فقه های متحصیلشون آمده این ن احتمالاً چته باشه اولی چه اصول آمده بسی که قابل بلاخذ تاریخی احتمال منگی در قلب می کنم مدوند که من نگاه کردم کافی در بود نه سو خیلی این مدونم مثل مواقع دو اونی که من احساس می‌کنم، توی قرن اول و دوم این مسئله تو من، بود بعد در حقیقت در اصول آمد از اصول دو مفته این در فقه مترکترشون در حقیقت نه فقه ابو همیقه فقه احنا نه فقه شافی فقه شوافق در بس میتونه ما یک فقه خود شافیی بدونی فقه شوافق شافی های که این در فقه بردیشون اصلا الان که فقه شافیه بودن تو همان هم کتاب مجموع که شرح کتاب اول ساها شیرادی در اونجا هم دیدن در خود محن هم که از حضران شافر در برند شهاره اومده به نظرم میاد اونجا هم دیدن من اما الان جاشتیه سوزه هم نموده این دستگاه کامپیوتر میخواد تفصیح میتونن مدنیان علا کتاب مشافر تفصیح میتونن اون تعبیل کن. اما این کتاب های ترهی متفصیح شون و اگر این محنب حالا ترسش گفت تزنن سباقا علمعی این اگر از پر این مطلب وقتی بود در این مطلب برس بود, در بود این مطلب در, در اصول آن بعد از اصول به فکره این تأثیر سرگام کرد و در این کتاب نقاط صور محصول که شرح نقاط صور که شرح به اصطلاح محصول فخر رازی بحثی داره ایشون البته بحث تاریخی نکرده با عنوان سلام سوال خود فخر رازی در خطبه اهل سنت به لحاظ خود حالا من خدمت شما عرض کنم در خطبه اهل سنت به لحاظ خود وقتی میگه که جمهور فقها و اصولی بر هستن این هستند که خطابات خاصه واجبی نه بر اساس اینکه یک شبه بش میشه جمهور قاهره‌ای فقهای سابقتون تمسک می‌کنن به خطابات اینم چیز عجیبیه یعنی واقعا انسان تعجب کرده فعلا در خصوص اهل سنت به جمهورشون نسبت دادن خب تمام طرف به جمهورشون نسبت دادن که خطابات خاصه حاضرت میه لا يا اموال معدوم تو چون مقام استدلال میان همه جا به همین خطابات تمسک می‌کنه اینا چیز عجیبیه تو این مساله معلوم میشه همون تصوری که من دارم باید درست باشه این از قرنی سه گمبه بعد بوده نبود اصلا در قرنی دوم نبوده یعنی در صورت فقه اسلامی نبوده بعدها اضافه شده اون وقت نسبت داده شده به هنابله که این هنابله قائل هستن که بر نقشه آمنه شامل معلومی نمیشه نمیشه مثلا فکر رازی کرد متکلمینه در این کلام خودش اینطور بود کنی به حکم یدولو علیه بسیق از مخاطبه جلده دو سفیه 539 مثل یا ایوهاللوینا آمنو یا ایوهالناس فهوه خطاب و نمه الموجودین فی حسر رسول این رو به جمهورشون نسبت بذاری شباه نشون این فقط فخرازی نیست الاول این اونایی میگه در حسابات شامل میشه اما اینه خوب دقت بکن حالا آقای مولا ما هم شامل میشه اما جمهور اهل سنت دیگه شامل نمیشه خاص از به موجودین در زمان رسول الله بعد ایشون دلیلش اینه که بلد. که خطاب با کسی موجوده و اندر دین صحیح جنود حرف کلامی رو داشته سیو جدون بعد فیضاله ما کان موجودی که لازم دکل و نکن و من نمی‌آمیشم یک دقیقه کنیم و یکون لا یکون انسانم ولا ما و من لا یکونه کل لا ولی شتاب ال متنا انسان والمؤمن. حالا بزنید. این اینکه شما در کلمات معلوم استاد دیدید که مراد جنبه لفظی باشه یا جنبه عقلی باشه خون یه توضیحی شده این تعبیر این بوده لعن الخطاب مراد از خطاب چیه مراد از خطاب نه تکلیفه این همون بحث آیا تکلیف مخدومی رو می یا مراد از خطاب این لحظه یا ایال بنیانه لعن الخطاب لعن و من داره اونو کنایه لا یثنا و از مشناول در انسان و مومن ظاهرن از انسان و ایوه الناس زاهر مرادم از مومن یا رویه هستین آمنون زاهر اینا این من ترجمه نوشی میگه اگر کسی نبود وقتی که موجود نبود یه مومن هم نیست یه انسان هم نیست یا ایوه هستین آمنون به کسی که نیست مومن نیست نیست نیست نیست سادوهای و نیست از او نیست سالا مشاره ورا بس ساد یا احتمال داره همینطور که در کلمات اوستاد هم آمد اصلا اصل دن جنبه عقلی او مطرح شده نه جنبه نقلی، نه بونه عقلی که در کلمات اوستاد بود این جنبه عقلی دیگر ترجم میگو ذهنتون میرسی که اصلا مسئله رو از چه دایی هم آوالد شدن؟ اگر این مسئله و تصور ما هم درست باشه اینها همه معایر اینه که این مسئله کلا بعد از قرن سوم اومده این صفت مسئله بعد از قرن سوم از چرا این لحظات به ذهنتون من عبارت شاورد و عراقی رو بخونم ببینید ایشون میگه قال یعنی قولهم من لیس موجودن لا یکون بعد ایشو میگه لایسته این این درست نیست لعنه لی انسان فی نفسیه انسان این شبیه قضیه شبیه, شبیه, شبیه, شبیه از زاگی دیگه شبیه قضیه است حقاقه و صحیقت انسان امرو مترسله و حقیقه کلها فی انفسها یجب لها انتکون از صفات انفسها اینا یک حقیقتی دارن وجدت و قدمت چی موجود باشه چی مقدار باشه یا ایگار لذی نامن و هر انسانی که مردوم است، موفق این حقیقت تر نمیخوام مقدار موجود باشه مادرمان این وجد در آدمانشوا از یک زاویه دیده مردوم آینده از زاویه دیده این فرقش بشینه این زاویه که ایشان دیده چیه و کهالکلوهلو حکم نداشته ول نخودل انسان ناتیر یا حیوان این درجه کل انسانان پیروک میننن. و امکان معدومن این این درجه و امکان معدومن این مناسب با قضیه حقیقی, خطابی یا حقیقی. از که ناینی کرده این هم ناینی میتواند خطاب یا این آمانه از ظلیل قضای حقیقی است پر کسی که مومن مثل از انسان و حیوان نه. این هم همین و الله لما صدقت کلیاتا اولن. این اشکال ببینید لندل انسان فی نفسی سوال جواب ان آن سلم اما حقه فی انفسه ها تکون و حال کلعت اینجا از چپکت ااقتصاالگوی انتاب زیاد داره. حالت کل از معده انل حقارت یا انفسه ها تکون و و غعل و بیاابون و انسانان چی بودشون مسئله معروف خلاف بعدها در پلسفان آمد اولا معتدر در دستان مطرح کردن در پلسفان مسئله آیا بر معضون میشه گفت شکر یا نه اصلا بودنس اون مسئله یعنی دقیقا نشون داده میشه که متأسفانه این مسئله متاسر شده به یک بحث کلامی این این مقدمه ها که من عرض کرده برای اولین بار درست باشه این مسئله از آثار تفرق از درستا تأثیرات کلام بر اصوله و نظاه هم شایدش نه از قرن سوم به بعده در خود متن فقه اسلامی نبوده به قرنس این دیگه این مسئله این این مسئله عملیست این عملیست که بر ما آیفوی نوشته این مسئله عقلی سفر امراض از عقلی در اینجا عقل نظری آیا که آیا معظوم شیعون املا معتدل غالب زن که از معظوم شیعون اشاره غالب زن هم پس احتمالا این مسئله حسولی غیشه تو اون مسئله کلامی پیدا کرد و دعوای اعتضال و اشعری مطرح شد بعد از بحث کلامی به اصولی که سونیدن بعد از اصول هم دفتر که متحکر سونی که سونیدن و اصول آمد تا زمان ما و سن که در مسئله هم خیلی تقریب واضری نیست مثلا مرومه آیخوی از نبلت کفایی سه تا تقریب کردن دیگه که قبول کردن شما کتاب همه همه هم, هم بیاره که تاواجده اصلا با خود احلی سنت هم اصلا اقامه با تغییر بود میشه در کتب اهل سنت هم هست و در این کتاب میکمال زیدیه هست مواهد بلغا بول چیه تا دارم کتاباتی مفصل هست دو کتاب مفصلی هست از عیمه زیدیه اصول ها هست اصول قدید نه ایشون در آخر صورشی که قادر بعضا این مسئله اصلا قدید رو فایده هست و اما کتاباتی میگید این شایی فایده این مسئله کجاست کجاست همه زاید میشه شما ف این نشون داده شد که این مسئله در صلو فقه اسلامی اصلا نبوده یعنی قرن اول و دوم کلن نبوده یه بحثی که بین معتظله و اشاطره بوده که آیا معدوم هم شیعون املا؟ آیا انسانی که بعد سال مؤمن پیدا میشه این هم اون حالا که معدومه یا یا یا لبین این روشن شد این نزاه رو انتخاب کرد چون نزاع کلامی که اساساً در فقه، نه در فقاهت، خب این در فقاهت، اینجوری در, در, در, در سنت نبوده آخرش هم گیر کردن که اولا تقریر معلل نزار چیه؟ ببینید مثل که فایصه تا خود که قرن گیر کرده، صدا تا تقریر نمیشه چیه؟ ثغره نزار چیه؟ من به نظرم نیاد من در بحثی سابه هم در همیشه میگم اگر ریشه ها شناسایی بشه هم سمره واضح میشه هم تقریب مرد نظر میشه هم استدلال واضح میشه ظاهرا همین که لرافی در اینجا آورده به احتمال بسیار قضیه اصلش این بوده لانو سلم اندر این لانو سلم اشاهره چون خود در واضح شده اما حواات که ان پسه ها تکون و حال کل عدم یک رو قهره ها سو اینجا سواز نیستید اون سووا که میشه اون بل المعدومات فی ها سواد و خلاب بافت. و این نممایت ای را که داره متحره همطور میث اگر این تقریبی که من حال کردم که درست باشید در هیچ اهدی از سنیوشی این فرق میبوده کرده ریشه های این برس و تأثیر این فرقی برس های منحوری و آنچه که مربوط میشه با آیات کتاب و استدلالات فرقی هم روشن بود یک مسئله کلامی تضایی بود اون هم از قبل سوم هیچ تأثیری هم در فرقه سابق نداشه این امتحایی که بودیم فهمه سمرش اینه و بعد لازم صرف این سمر رو گیر این معلوم میشه که این مسئله اصلا فیزاته های مسئله واضحی نبوده این مسئله کلام بگیراشه و آیاته قرآن که خب این کلام بگیرده نمازم مسئله اینطور بگیرده و رضا ازدهیشون مثلا همین جمهورشون یکی از استثدالات که شبیه نیست یکی از استثدالاتی که جمهور میگن شامل نمیشه بگن این آیه وارد که من چند بارم خودم خون به لغونزرکم بی و من بلد به همین آیه من فرم اصلاح کرده از این آیه معلوم میشه لغونزرکم کم یعنی مخاطبی چون من بلد لآیام بل قیامه پس خودش شامله آیه خودش چامل بی و نمیشه؟ کتاب همیشه به حاضرینه تمسیشون اینجور که به این آیه میکرده گفتن از خداوند خداونت همونده همونده رکم بیهی و منبله بخصیح بخصیح پس کن فقط خصوص موجودین رو میگیره غیر موجودین رو نمیگیره لذات من منبله همونده من سریعه دیگه اولا تفصیح کرد ویده اگر من اون منبله همونده بگیردیم هم خواستی موله همونده رکم دیگه احتاج یعنی مخاطر شده خطابات داره اون منبلگ کم چی میشه بعد؟ لبز کم مخاطر به کمی کی میشه؟ خصوص موجودی چون اگه ماها بشین کم از جزو منبلگ من هستیم ماها که جزو منبلگ هستیم میگه ماها جزو منبلگ هستین کم یعنی موجودی خب نه عبیزایا نه توضیح مثلا جوابش هم واضحه شاید نکته اساسی مخواد این باشه که خطاب رو به انزرکم گفته میخواد بگه اساسا نکته بلوغه چون شما مواجین من هستیم بلوغ شده هر کسی تصادفا این آیه شاید شاید به عرض باشه یعنی هر کسی به انزرکم بیگه یعنی به قرآن یعنی هر کسی که بلوغ برو بشه این مخاطر به قرآنه به قرآن. این تصادفا شاید مراد آیفا شیخ همین بود که اصلا ظاهر این آیدان دقت بکنم زده این آرونه موافق بارع علمانشی است که شامل معدومین هم میشه یعنی در این آید ناظر بینه که به برسای انذار ما در قرآن برای مرحله تنجزه مرحله تنجز هم به وصوله شما که مخاطر من هستین بعد این دین هم هر که باید پس چی میشه مجموع افکام و من برد برای در دین اگر بنای انزاج به قران باشه خوب به خود دو رو درست میکنه و من بله خب نتیجه چی میشه مصحف در نتیجه مصحف مالکی مال هر دو یعنی آیات مال هر دو میگه دقیقاً به همین آیه میشه به دو طرف تفسیر کرد هم اون طرف تفسیر کرده چه بحثی پیشون فراهم در زهرها اگر بکنید این مطلب رو خواهش میکنم دقت بکن بله، و این نمایتی ذاله که علا رعی المعتذره به و ان المعضومه شیعون هم شنید تو پیشایی بحث با کجان از قرآن و حدیث و سنت اون هم خارج شد الان این نوایه که عقلی میفهمونه خوب بود کردنش <تصح> اقلی سر بعد ما هم خصاص ذاله که تازه معتذره این در رو در مقایم بسیطه مثل بیان رو سراب رفتن اما نمیشه مثل که من مخال مرکب الانه هم که فی به من نوشته اول مرکبات این اشتغال چاپ شده و امن مرکبات <تصفيق> نکرده که کنم این اول مرکبات غلط چاپ شده و امن مرکبات این کتاب نفاز اصول مال غرافی شرح بر محصول تفرازی جلد دو شده. اینجا که نوکنم 540 و اما المرکبان اهدون من مشاهیر هنده تاضیه یاد و به سروی نبل و این نما حکاب امام فلم هستر ان شرزن فلم انسان من مرکبات و کدالک ال احمر والاسور به خلاف همرت و سواد هم که در ما آمده که با احمره اصد هر دو بسیتان دویه کش مرکبه مش... که بحثش بذاشت فه اینه همه بسیتان هادا تفصیل و مذهب معتدره و اما نحنو یعنی حضرات و اشاعره فنقو لا یسیر و سواد سوادن ولا غیبهو من الحقایش الا به قدرت الله فعالا فران بحث فلسفی خودش و کلامی فضاله تاب آن لیجار ولا تاجنون قبله فلن پست و خساب صلح علیها علیه ها نتیجه وحیه معضومتون از وقت پسته پس یاد یاد هم آمنو در زمان تیغم بر بره امسال ما معدومه وجود مذاهر ولی هم ختاب شاملی سمیشه پس از این مطلب اگر روشن بشه معلوم شد که چند تا مطلب هم تاریخ نزار روشن شد هم روشن شد تره مسئله چرا پیشانند و هم معروض رو که این مسئله چندان تمرهی نداشته چون اصلا در دورانی که اصل فرمت شده این مسئله محرم نشده فرح. لم یک کنه علیه که یک فرح استدلالی صناعی که بعدها پیدا شده او آمدن بر اون مبتنی کردن در همون به جا میکنن بلکه مقایداتی میخدابات شامل محرمی هم میشه پس بنابراین تا اینجا فکر میکنم نقطه درگون ما هم روشن شد نقطه سوم هم که ادهی از اصولی من از میگن میگم سمره مسئله قلیده یا واضح نیست اون مسئله سمره هم در حد خودش روشن نکته چهارم اونی که الان در کتب اصول داریم حق با استاد بیشتر جنبه لحظی بارن مثل همین تحبیر این تحبیز زیاد دارند. دیگه اگر مثلا گویا الی الذین آمنو معدوم هنوز مق... معدوم از مؤمنیست نیست چون مؤمنیست خطاب به او معدوم نیست خطاب به معدوم نمیشه این تعبیر که خطاب به معدوم نمیشه این جنبه لحظیه بحثه ولا تکلیف معدوم که مشکل نداره انصاف دقیقا همینطوره که معدوم انصاف استفاده کردن خلاف لحظیه با مراجعه که منم که شما میخوام اون را دیگه شما را خیلی فایده داره خیلی هم مسلمان نیست این به جای درسته حسابی نمی بسنه این خطاب خطاب لحظیست لیکن طبق این تصور ما محلوم شد که ریشی لحظیست در یک ریشه مسئله کلامی است. اینجا رو استاد عزیز صلی اللہ نفس بیان نفعه که ریشی اون بحث معروفه که آیا معروف شیل املا و این دعوازه حقیقت بین معتذره و اشاغره شروع شد از معتذره و اشاغره به اصول رسید از اصول به فقه متعثیر یعنی به فقه شوافع رسید نه به فقه شوافعی به فقه احناف رسید نه به فقه همین و یه باشاش تو اصول هم تو اصول ما هم جای خودش رو باهید خب نقطه شهران و پنجم من به شماراش میادم به خاطم مولارد و فرمایید نقطه ها رو آیا با قطع نظر از این مسئله ای کلامی یا فلسفی اصولاً این مسئله رو میشه ما یه اصولی علیش بدین ترح و, ترح و در مسئله آمده همون که مرمون مثلا ناینی رفتن که آیا یعنی از در غذای حقیقی هستن یا از قبیل خارجی هر دیگر دیگه‌ای مردم استاد سوال در قبیل خطاب حریری هست یا خطاب انشایی که از بین این حریری انشایی تونه خیلی منز من نفرمیدم مراد جدی ایشون چی هزار مرادشون حریری خطاب مثلا شخصی باشه انشایی هم نه خصوصی شخص بده حال حالا هر آل چیه باشه مراد آیا ما میتونیم حالا واقعا در اصل مسئله چی بوده بشه چه بوده ما میتونیم یک تفسیر اصولی یا یک تفسیر قانونی و حتی یک تفسیر قرآنی برای این مطلب سؤال، این خطابات مشافه رو هر کدوم دوست سه دو سه حالا من به ذهن خودم میاد. البته این قبلا من اعرض کنم این رو خود حضرات اهل فقها چه سنگی چه شیعه فقاهای سنگی که بیشن متعرضن که در قرآن کریم ولو خطابی یک سنخه اما گاهگاهی مخاطب حقیقی فرمی کنند مثلا این وقیم علی و, و سلام این از قلیل واجب تنینید کل افراد واجب اینید بر کل افراد اینها باز اقامه سبب تو اما مثلا از زانیت و از زانی فرج دو این زمیر فجدو با عامه مردم بر میگرد این به عامه مردم میشوین زمی و زمی رو جلد بکنن این خطاباً یکیه فجدو با او یکیه این رو احتاج شده در بحث تفسیری و بحث قرآنی که ظاهر خطاب به لحاظ دو قطعه هم یکیه فجدو و عقیمون لیکن عقیمون رو واجب اینی گرفتن فجدو رو یا برستده واجب کفایی گرفتن یا گفتن اصلا مخاطب حکام هم. یا مخاطب قضا هست اوهی قضایی و سلاما مخاطبه به پجر دو عامه مردم نیستن اینها این ها قضا یا بلاف مخاطب در این که نهره خطاب مثلا خطاب به رسول الله قل عوض و قل عبدالعشید اول صلاح اول صلاح خطاب به رسول الله بنابرای مشهور، این آیه مبالکه در روز شب اسرا و معراج نازد شد چون صلاحات خلص در اون از سران در عواضه که مسلم نماز می کنند رکعتی می اما وقت نداشت اول شب و اسر شب اسرا و روز مختلف می تا شب معراج که سال پنجم از مبعث بود در اون شب شد در کنج وقت نماز بکنند که صبحش این آی بر رسول الله نازل شد اعی الصلاه نزولت شمس لا تغلی اعی بر خطاب به رسول الله لكن مراد مثل است این خطاب در رسول الله حالا جریاند یا علی و اهل نبی ادا طالع نمونه اصلا خیلی عادی اولش اهل نبی بعد خطاب شمس ادا طالع نمونه این جوری یعنی خطابات قرآنی رو کسی سیخات تیگیری بکنه یک نهج واحد نیست ظاهرش همه به نحوه خطابه اما نحوه واحدی نیست جبرد میکنه ولی این اختصاص به این خطابات مواجهه نداره اشتباه نشد در اون سوره احضابی یا سوره نوره در آیاتی که یا نسا ام نوی لستون من جمله از احکام و عقل نسالا و آخین از احکام جمله از احکام برای خانمه های پیغم بزرد شد و تصریه همشته لستونه لیکن جمله از احکام مثل عقل نصالات اخصاص به زنهای پیغمبر من زنان همین زنها با نوازو کنه محل کلام کجا شد در اونجا بعضی که از اون احکامی در اونجا است و خرم نه که بیوت کنه در خونه هایتون باشی استقرارتون قرارتون در خونه هایتون باشی اینجا بحث کردن که این آیه خاص به زنهایی پیغمبرونه که آیا زنهای حیوندن فقط مکلصن از خانه در تو اون گریان آیشه و خروچ خب اون محل کلام همون بیشتر یا این آیه مبارکی شامل باز همه زنان ظلامش نیسته اول مثل مثلا یکی از تکالیش نیست که های از خانه ها در میان و خرمه بیویی تو کنیم یعنی غلطن فکر نکنی این آیه مستر یا آیه الگی نانون و اقیه با جایی دیگر این معروش تیل برخور کرده د و این اختلاف در خطابات قرآنی کاملا محسوسه و اینجا بحث این است که ما چه تفسیر قانونی و یا حقوقی و یا فضل قرآنی میتونیم در این بقول عرب ها ظاهره یا ایرانی ها پدیده سنومن داریم. در این سنومن یا پدیده مثلا اعلام چه راهی داریم که بگیم چه تفسیری داریم این که مرحوم نانیوارد شدن یه تفسیر اصولی غصوری کردن کار قضیه حقیقیت آمد شبیه هم در کلام اولا نفاصل محصول دیدیم اصول غصور آیا این یک تفسیره یا ما بیاییم یک تفسیر قانونی دیگه بریم مثلا حقوقی دیگه بریم تو اصولاً چون مشتمر جامعه ای که رسول الله در زندگی میفرمدن یه ای بود که لغت قانون درش جریان نداشت بی مسلم نه در مکه نه در مدینه قانونی راهش نبود. اصلا قانون نداشتن اگر من بود یک عملی به صورت قانون و الزامی بشه و خیلی مونه سوال همی که نداشتن از برکی بکنی اگر من بود الزامی که می, می نوشتن مثلا من دسته شعر بود نوشتن وقتی نوشته می شد یعنی به این الزام آور برای همه افرادی این همین فرهنگ در برهان هم منحس شد کده برده که ما سینا که ما این تصور که چرا کتابت یعنی الزام این چون در جامعه اون روز اینطور بود این یک فرهنگ اجتماعی است. جامعه اون روز به طریعتش جامعه بردهی بود تو دفت در این جامعه پردگی رابطه همه از دیگاه رابطه مولا و عبده که یک رابطه آمرانه است یک رابطه حاکمانه و مالکانه کارا از آمرانه نیست یک رابطه مالکانه است. مالک به من خودش ده. در این رابطه مالکانه حتی غالباهی احکام وقتی هم با رابطه جعب و تکریف میشه خب الان در موهنانی دیگر لو که صند پیوهر بالاهر کلاهم این خطا بودی عرب نه نه زجر مردمانی عارفودیار میخوانون که این واسه صند نه اصلا تو باطرا نه این حرام نیست نماز خونن تو بر ماهای کلاهم اونقدر خوبه اگر کسی در موی غیر معقول الله نماز خون کار حرام مطلق نیست نمازش باطره فقط دو حالت نماز درست خون دوست تعبیر تعبیر زجر اما مراد جدی حکم واقعی ببینید بحث شما یونا یونا یک جامعه قانونی ای اگر این بحث یک بحث اجتماعی و قانونی و حقوقی میشه و تاریخی و اون نکتهش این میشه که اساساً این تصور بوده آمدن سیقه جمع حالا من یک توضیح بودم برکات باشت توضیح بیشتر. این در حقیقت یک نوع لغت قانونی حاکم بر جامعه اصلا اینجا جمع مراد نیست این رو بنابراین مثلا بعدها از چون در قوانه قربی هست و تو توی ایران مثلا تو قوانه چون محلی تجربه هم در چون خودمون تجربه سلاب سلاب واجبه اما این توی جامعه بردوی اقیه اون سلاب یعنی بسیقه یه خفاق گفته میشه لذا طبق این تصور تصوار نایدم کسی تفسیر کرده باشه طبعه این تصور اصولاً در کتابات قرآنی اون حالت کتابی مرهاز حسن نگاه نشده مجرد تعبیره مثلا بوده از صلاحات و باشه از زانی یو از زانیت و تجاری این بوده اون ماده دقیق کن این تفسیر روشن شد در این ماده ولذا فرمان میکنه مخاطب حکام باشه مخاطب عامه مخاطب کار دفن. مهم نیست که مخاطب کی باشه مثلا اجتماعی بگره. این یک تعدیر اجتماعی خوب دقت این تعبیر قانونی نیست که الان ما روش حزاف وارد بکنیم یا, حقیقیت یا حقیقیت حقیقیت. این یا این یک مجرد تعبیر لیچه ازاد یعنی در یک جامعی که نظام ردی برشون حکومت داره تمام قوانین هم به سیری آملان و مالکان رفته میشه. چون نظام خانون در جا رفته و نظام هم بنابراین ازدهی از, از آیات کتابی هم به زباد مثل بسیر احلات آنوه و هر احلات خانونی قانونی. اگه افعود به افعود داری به سیری جمعه یک و دیگر فقط ای این یعنی الله ما لا حرم الربا داریم که این به شیوه قانونی این خطاب نظر رو آماراری می. چه این حساب باور شما هر دو یکی هم اوفو به اوغول با احل الله یکی است هیچ فرقی کنه هر دو یک خطاب قانونی هم اونجا اگر شیوه خطاب آمده این شیوه خطاب به خاطر یک وضعیت اجتماعی دید. لیلاب لله علی الناس یک جور دیگری مطلب شما وقتیم شو از خریدن، مطلب را یک کاری دیگری میشه. الله علیه محمد